بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و الصلاۃ و السلام علی رسول الله صلی اللہ علیه و سلم معزنین محترم درس امروز ما و شما درباره انسان شناسی در, در جانب اسلامی است صفحه 252 کتابتون است خب این درس الله الرحمن الرحیم گفتم آغاز میکنیم. اصلا امروز وقتی که ما و شما درباره انسان صحبت میکنیم و انسان شناسی صحبت میکنیم مشکل اساسی مردم در چیست؟ مشکلی است که انسان های امروزی تانستن که از پرنده ها بهتر در هوا پرواز بکنند. تانستن که آنقدر وسایل خوب بسازن که حتی پرنده ها که تنها با آسمان پرواز کنند، اینا بتانن که از پرنده ها که خوبتر و بهتر و زیباتر حتی ستها نفر با خود یک جای به هوا ببرند. انسان ها تانستن تمامی کار را بکنن به بفهمید. بفرمی دیگه تیسیز یه انسان ها تانستن که از پرنده ها در هوا بهتر پرواز بکنن و همچنان تانستن که از مایی ها و نهنگ ها در تحت بحر تحت البحری خوب بسازن از را که بهتر و خوبتر شنا بکنن ولی مشکل چی است؟ مشکل شانده است ای که این انسان ها که مثل انسان در روی زمین زندگی بکنن دیشیخ با چراغ همه گشت شهر که از دیودت ملولم و انسانم آرزوست. و انسان ها تقسیم میکنن میکنه بسیدسته کسایی هست که آناتومیش انسانیست لیکن عملکردش، سیراتش، سیرتش اخلاقش مثل انسان نیست این میگه مثل دیوارست دیوی یعنی چی؟ میگه دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر که از دی و و انسانم وارز است. دی شاب یا دیروز یک شیخ بزرگوار میگه با چراغ در گرد شهر میگشت که از ده و ده ملول هم از انسانهایی که ظاهرشان انسان وارش لکن باطنشان یا دیواره واره هستن یعنی شیطان صفت هستن و یا دد هست در این صفت هست میگذیق کاملا ملول هستم انسان همارو دوست یک کزی که وقت چهره زیبا داره صورت زیبا داره سیرت زیبا داشته باشه وقتی که ظاهرش زیبا هست باطنش هم زیبا باشه از این خاطر میگه که. کاز دیودت ملولم و انسان امارض آرزوست من ضرورت دارم که یک انسان باشه انسان که مثل انسان زندگی بکنم مثل انسان با دیگران ارتباط داشته باشه شخصیت عالی داشته باشه اخلاق عالی داشته باشه اگر چریش خداوند احسن تقویم خلق کرده چهره زیبا خلق کرده باید عمل کرده شما یک قسم زیبا باشه حال ما گفتیم که تانستن انسان ها واسائل خوب بسازند تنها در سازی خو انسان سازی نمیشن وسیله ساختن وسایل خوب ساختن لاکن انسان ساختن نتونن نتونن سر می سلاق انسان رو در روی کره زمین بگردن انسان خوب کیست انسان خوب کسی است که وقتی زندگی میکنه اشخاص دیگه هم با امرایی عزور راحت داشته باشن آرامش داشته باشن من میگم من انسان هستم خب من چه قسم انسان هستم وقتی که جامعه مردم از پیش راحت نداشته باشن زندگی مردم هم من مثلا در خطر پرتم ما انسان‌ها را مثلا روز به روز مثلا از صلاح ما از بمبارد ما از دشمنی ما مردم خسته شوند بنا ان این انسان درست و کامل نیست انسان کامل خیکی است انسان کامل کسز انسان درست کسز که اگر ظاهرا انسان است باطنش هم مثل انسان باشد اخلاقش هم مثل انسان باشد روشش هم مثل انسان باشد نشسته برخواستش مثل یک انسان باشد این خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک تعداد جوانان بسیار خوب را تربیت کرده بود شخصیت های بسیار عالی را تربیت کرده بود که شما شما مثلا از این جوانان چند مثال بگیریم اناله حضرت محمد صلی الله علیه و سلام یک تعداد جوانان را تربیت کرد چه قسم جوانان را تربیت کرد جوانایی مثل علی مثل انس مثل مصعب بن عمیر مثل بلال مثل اسامه بن زید هر کدام از این وقتی که انسان مطالعه بکنه می‌بینه که هر کدام از یا جوانای بودند با شخصیت عالی. جوان است که مثلا بگویم چری ما جوان ورس. جوان است که شخصیت عالی داشته باشه. اگر چریش 18 ساله از سن 18 ساله هست, هست، چری جوان داره، لکن قلبش، فکرش، اندیشش آنقدر پخته هست که از 90 ساله و 1000 ساله که از 100 ساله و حتی 1000 ساله که بیشتر است. پیغمبر سرم می اولین سفیر اسلام روان بکنه اولین سفیر اسلام مسحاب ابن اومیر نام داشت چی نام داشت؟ مسحاب ابن اومیر مسحاب ابن اومیر یک جوان بود پیغمبر خدا چطورت یک جوانی را دوتی یک شرایط روان میکنه و ای جوان سن شام کم است ای چطور روان میکنه در حالی که بزرگای صحابه ایش در اونجا هستند همه جای ایران بودن ولی پیغمبر صلی الله علیه و از باز شما میفهمید که تو فکر از این نشو که جوان سنش کم که 16 ساله یا 20 ساله است بلکه این جوان شخصیت بسیار بزرگی داره که از 60 ساله و 80 ساله که مغزش تر است ما به انسان‌های پخته نیاز داریم به جوانایی که مغز پخته داشته باشند اندیشه پخته داشته باشند فکر پخته داشته باشه اینال پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اون تو جوانه را تربیه کرده بود اولین سفه سالار را اسلامه که به کشورهای خارجی به امپراتوری روم روان میکرد در این لشکر بزرگ اسلام کی بود؟ در این لشکر بزرگ اسلام یعنی کماندانی از اینا رهبر از اینا کلان از اینا کی را انتخاب کرد؟ حضرت عسامه ابن زید عسامه ابن زید عجساله بود لکن بزرگای صحابه در مقابل ای جوان 80 ساله ایران بودند چی کل کلگی پایین اسراف ای, ای جوان چطور 80 ساله که مثلا انسانای 60 ساله و 70 ساله رو رهبری بکنم علت چی بود علت چی بود که ای جوان با وجود از خودش سنش کم است لکن پیغمبر خدا جوانای تربیت کرده که اینا پخته هستند آنقدر پخته هستند که با اجل سالاگی میتونه که رهبریت مثلا ش... اشخاص بسیار بزرگ حتی در روم س... سرکردگی قوات های اسلامی را به دوش بگیره حضرت علی یک جوان بود لکن ایمان قوی او را به چی وادار ساخت که در شب که پیغمبر صلی الله علیه و سلام میخواستن بکوشن میفهمید که اگر دشمن ها یک دفعه بیان حمله بکنن شاید من کشته شوم لکن گفت خیرس ما قربان اسلام ما قربان پیغمبر خدا ما کوشا شبم لکن برای دنیا درس بانم و در سر پیغمبر صلی الله علیه و خواب کرد اینال پیغمبر صلی الله علیه و این قسم جوان را تربیت کرده, کرده بود در مردها های بسیار بزرگ بزرگ تربیت کرده بود در بحیل دخترها و زنها انسانهای با شخصیت را تربیت کرده بود کسای بودن کسای بودن که اگر امروز با مردهای امروزی و را مقایسه بکنیم اگر یک میلیون مرد امروزی را در یک پلی ترازو و شخصیت بی بی فاطمت زهرا سلام الله علیه ها را در یک ترازو بانیم شخصیت بی بی فاطمت زهرا بلندتر و عالی تر است چی کرده بود؟ چون پیغمبر خدا اونموت انسان‌های را تربیت کرده بود که در مکتب نبوت درس خانده بدن و شخصیت بسیار عالی داشتند. ایچ کسی در غار سور جرات نمیکد که به پیغمبر خدا غذاب بره لیکن پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ایتو کسایی را تربیه کرده بود که قهرمانانه زندگی میکردن بی بی اسماعه بی بی اسماعه در غار سور به پیغمبر سم غذاب بره برای عزت و بکر صدیق من آن بخورم اونا گشنه باشن ما آرام باشم اونا خسته باشن تشنا باشن پیغمبر خدا قضا نداشته باشن خیر است من کشته شام پیغمبر باید بر قضا برسه در غزب احاد یک خانم از بنامه بیبی نصیبه بیبی نصیبه در حال که وظیفش وظیفه سیهی بود کمک های اولیه میکرد زخمی ها را میکرد ولی یک وقت سهل میکنن که مشتیکین بگه حجوم ببرین سر پیغمبر خدا اله پیغمبر خدا را بکشین فورا بیبی بی نصیبه شمشیر میگیره و از پیغمبر صلی و سلام مسلحانه دفاع میکنه چرا دفاع میکنه؟ بخاطر از او میفهمه که عزت و شرافت و کرامت زن توسط اسلام زن در اسلام شخصیت حاصل کرد بیبی بی خوله یک صحابی مبارک است یک زن بود که شوهرش زهار کرده بود زهار در سابقی بود که یک نفر برای خانم خود میگفت تو مثل مادرم هستی نه خانمش میشد نه طلاق میشد اما تو معلق میمون یا ما گفه ای پیغمبر خدا این دین اسلام که دین رهایی بخش است نجات بخش است زنا را از اسارت از غلامی خلاص کرده برای از شخصیت داده شوار ما بر من تو گفه گفته. پیغمبر سم گفت به شما فعلا جواب نیست چرا ای پیغمبر خدا نیست حتما باید خداوند مشکل ما را حل بکنه در در اینه میگفت که آیت قرآن نازل میشه قدسمی الله قول التي تو في و کفی زوجه ها و تشتکی الله و تحقیق خدا شنید صدای اونمو زنی ده که تو تشت... جادل و کفی زوجه تو مجادله مگرد قدسمی الله خداوند صدایش شنید حالا خد... بسیار دشمانه اسلام که زن عرضش نداره در اسلام خدا صدایش شنیده ببی خدیجه زنه بود با شخصیت شخصیت عالی تمام سرواتا و مال خدا در راه خدا مصرف کرد به نام مادر فقرا مشهور شد خداوند متعال جل جلو عزت دادن و رزی بر مقام ازی چی کرد؟ در بین ده هزار صحابه عزیزت جبریل امین میه و به پیغمبر صلی الله علیه وسلم میه که ای پیغمبر خدا برای بیبی خدیجه بگو که خدای از و برای تو سلام بفرستن شما فکر کنید برای یک کسی که خداوند سلام بفرستن ایچی بود که شخصیت های عالی بود بناند پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیش از وسیله سازی انسان سازی کرده بود انسان های رو ساخته بود که ای وسایل اترا پسان اینمی انسان ها تانستن در طول اشتاد سال در طول 80 سال چی جور بکنن؟ امپراتوری جور بکنن که رومی ها در اشت قرن نتانستن ای کارا کی کرد؟ ای کارا کی کرد رئیس های؟ شخصیت, شخصیت های اسلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینال چی بود که؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخصیت سا امروز همه چیز داریم همه چیز داریم وسایل بسیار خوب داریم موبایل‌های بسیار لکس داریم اما جوان نداریم با شخصیت عالی بسیار کم شاید اگه باشه دو فیصد. جوانی که اندیشیش مثل اندیشه حسین باشه حسینی زندگی بکنه علوی زندگی بکنه محمدی زندگی بکنه عمری زندگی بکنه کسایی باشه که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که در زیر درخت خواب می کرد امپراتور فارس نفسش میبرامد دلش میلرزید در حالی که خودش زیر یک درخت قرار سر یک سنگ سر خود مانده بود چرا چون اونا ایمان قوی داشتن اونا دل خوده به دنیا او تو دنیا را هدف قرار نداده بودند دنیا را وسیله قرار داده بودند که میتوننن با این دنیا از این دنیا استفاده کرده شخصیت های عالی باشن اینا رو بسیاری کسا در انسان و انسان شناسی مشکل دارن امروز بسیاری پروفسورها و فیلسوفا را ببینید اونا چی نموشته کردن نشiktه کردن که انسان مخلوق ناشناخته انسان مخلوق ناشناخته چی انسان مخلوق ناشناخته میگه والا ما این 21 قنظامت کشیدیم تا بالا انسان رو ناشناختیم تا بال انسان رو ناشناختیم چرا رو ناشناختیم میگه والا این انسان که از شناختش مشکل است انسان را معرفی کردنش مشکل است بعضی کسایی دیگه مثل داروین داروین چی میگف؟ داروین وقتی که چهره خدا رو ندید، دید که قواری شادی وارست گفت والا ما در و پدر و ما کلشون چی هستن؟ شادی شادی است. ما اولادای شادی هستیم. خیلی انسان دیگه هیچ کرامت حاصل نکرد کو کرامت انسان چی شد؟ عزت انسان چی شد؟ شرافت انسان چی شد؟ اینا عزت انسان چی شد که این انسان اصل شادی شد؟ یک دات کسام میگه انسان بیچاره گاردانم یاد نداشت. گاردانم از توتی‌ها یاد پس انسان کلاونو بود کلاونو شادیش شد و استادش استاد زبان شناسیش توتی شد زبان از توتی یاد گرفت و کو خو خو از مرغ یاد گرفت ها انگزدان از خر یاد گرفت پس اینسان چی شد تا اول اینا تا انسان هم میگه ما ناشناختیم اما خداوند متعال جل جلاله 14 قرن انسان معرفی کرده مگه نه نه نه, نه. این انسان هم ما ساختیم اول معرفی میکنه چیره؟ اول معرفی میکنه چهره ظاهری تو انسانه میگه تو انسان که هستی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما انسانه چهر در چهره زیبا خلق کردیم چه قسم چهره زیبا؟ که انسان از تمام مخلوقات کرده زیباتر است از تمام مخلوقات کرده دیگاه رو ببینید در چار پای روان است ای دو پای روان است چهره دیگرها رو ببینی است، و کور هست شده رو ببینی لبایش کشوال, کشوال، کتک هست اما انسان رو ببینی همه چیزش زیبا هست چهره زیبا برش خلق کردیم باز بخاطر از اینکه این انسان این انسان انوز عزت و کرامت بتیم برش گفتیم که و انسان تو باید اول معدنت کشف شوه برای از بین دیگرها برای از بین دیگرها تو انسان ثاناسی ولقد کرمناه بنی آدم ما به بنی آدم ها چی دادیم کرامت دادیم اینو کرامت دادیم پس تو کرامت داری نذवत به دیگران پیشانوی مکرمه طبقه از الله جل جلاله به کسی دیگه خم नाکو سرت تا پیش کس دیگه خم नाکو رکوع و فقط به الله بکو که خالقت است پیش هیچ مخلوق دیگه نه پیش پیغمبر نه پیش فرشته نه پیش جن نه پیش هیچ کس سرت پایین نکو چرا که خداوند را عزت و کرامت داده روح انسانه روح انسان خداوند به خود نسبت داده گفته و فیه من روحی یکی گپ فلسفوفاس و فیلسوفا در قسمت ایات نمیفهمند و ده به حساب فلسفه میگه که خداوند روح داشت 100 فیصد و مثلا 2 روحش باز برای انسان ها داشت این غلط است ما خداوند را به روح و جسد توصیف کرده نمیتونیم چون روح و جسد کسی مخصوص است کی انسان ها هست پس خیر روح انسانه که خداوند به خود عزت داده چرا میگیم این نمی که ما مسجد تا یک اتاقت جور میکنیم کنیم می که اتاق عزت زیاد داشته باشه باشه میگیم این مسجد است میگیم این خانه خدا است فکر اون باشه این مسجد خانه خداست در خانه خدا باید بسیار مخترمانه حرکت بکنی باید در خانه خداوند در خانه خداوند باید تو کارایی که در خانه خود می نکنی پس عظمت چرا خانه خدا میگن خدا به خانه نیاز نداره یک کس میگه خدا خو به خانه نیاز نداره خیلی چی را میگه بخاطر که ای اتاق عزت بته خدا من چی گفت گفت که ای خانه خدا هست کعبه شریف ما شما بیم کهوه سنگ و چوب است کهوه عبارت از سمت هست کهوه چی است؟ لیکن از سمت و از تکه و از ساخته شده لیکن خداوند بخاطر از این که در ای گرد از این مثلا مسلمان ها و قبله مسلمان ها هست و سالانه چهار میلیون پن میلیون آجین جمعین و اینجا عظمت اسلام معلومشه که ببینه که اسلام چی انسان سازی کرده که بین هیچ کس اختلاف نیست سیاه پوست سفید پوست زرد پوست اروپایی امریکایی همه از اینجا میاین و در اینجا کلشان آ اینجا مردم میفهمند که هو چقدر چه قدر عزت داره چه قدر کرامت داره چه قدر برتریت داره چقدر اسلام تانسته این ها را با هم یک جای بسازه یک پارچه بسازه کلشان یک شعار دارن لبیک الله و از امریکا اروپا آسیا و افریقا از کل جای مردم میان و کلشان یک شعار دارن یک لباس سفید دارن بین کس فرق نیست کلشان یک جای نماز میخوانن یک جای رکوع میکنن کلشان کلشون شعارشون یکی الله و لبیک لبیک لا شریک لک لبیک این چیست اینجاست که خداوند متعال جل جلاله انسان انسانها را انوز عزت میده چرا ما که برای بیت الله میگیم خداوند خوب خانه نیاز نداره میگیم بخاطر ازی که این سمبول توحید خداوند عزت میده اینه چی گفت؟ به خود نسبت داد گفتی خانه خدا از بیت الله پس تو انسان خداوند عزت داد گفت تو را چیری زیبا خلق کردیم لقد خلقنا نال انسان فی اصل تخیم روحی تو را به خود نسبت داد که روح انسان و مردم فکرتان باشه که و نفقت و من روحی این انسان روح تو را به طرف خود نسبت داد که که تو انسان بسیار انسان با عزت است با کرامت است اگر تو یک گسفند زب میکنی کنی یک گسفند میبری می کشی بسیار ساعت از پنج هزار پر گزفنده میخوریم بیبری در خانه حلالش میکنی الله و اکبر گوشت میکنی اما یک انسان نمیتونید در مقابل ملیاد ها از بین ببریم چرا که اگر یک انسان از بین بردی مثل تو که کل بشه را باشی خدا میگه اگر یک کسی یک نفر بکشه مثل که کل دنیا را کل مردم را از این خاطر این انسان باید بسیار باید انسان کرامت قال شود، غیبت شفش رئیسای خود نکنه چی همیشه او رو با کرامت و با عزت به هر انسان منعیس انسان احترام شود، پس انسان چهرش زیبا، روحش نسبت به روح دیگه مخلوقات با عزت تر، متوجه شدن، اینال مگه خی وظیفه از این انسان چی هست، تو انسان میگه برای هست بین وظیفه ایم چی هست، مگه وظیفه تو چی هست، تو سفیر خداوند در روی زمین هستی تو خلیفه خداوند در روی زمین هستی تو باید شخصیت و زود از نتی ملائکه ها در آسمان ها حکم خدا را تطبیق میکنند در دیگه جای تطبیق میکنن تو در روی زمین اومدی که باید احکام خداوند را تطبیق بکنی تو باید شخصیت و تبییان نتی تو باید خدا بسیار بالا والا مقام فکر بکنی تو باید پیش گاو و گوساله و خر و مرغ سجده نکنی پیش مار نری کلاگک نزنی پیش حیوان سرت خم نکو و همه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا تونان به کفاری و به غفلت نخوری تو باید اینان که حاصل کردی، تو باید غافلانه نخوری، بلکه هر لغمه ازیره که میخوری، فکر بکنید خدای خدا، کدام ذاتی است که ایره خلق کرده، چه قسم ایره خلق کرده، این سیاره ای همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، کلگی تو میه، فرمان تو را میبره، تمام حیوانات و فرمان تو هست، آب در خدمت تو هست، محتاب در خدمت تو هست، سیاره ها کار میکنن تو. اما شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. بازی بسیار غلط است که تو از آب خداوند، از نعمت‌های خداوند استفاده کنی، با زدور کات نماز نماز کمرت بشکنه. باز مثل اون دواره نماز باشی که تو خدا جنگی باشی، باز شخصیت تو درو تنمیازه. با آدم بی‌نماز، کسی دیگه که تو خدا گپ نمیزنه که تو خدا جنگی است. او کسی که تو خدا پنج وقت گپ نمیزنه نماز گپ زدن از با خداوند ملاقات است. میعراج مومن است انسان میخواه که با خدای خود گپ بزنه توسط نماز گپ میزنه ایناله کسی که نماز نمیخونه ای ارزش خوده از یک حیوان هم پستر میسازه شاید کل حیوانات یک کسی یک روز قصه کرد میگمی پشک هر روز شکر میکند خدا شکر که من پشک هستم سگ نیستم که غو غو غو غو نا خیلی غو کنم قرار ده جای میو میو میکنم نه یگلمنان میخورم خاستم سگ میگه می خدای شکر که من سگ هستم خوک نیستم اگر گنده بوی بی عقل دوز بی غیرت کل صفاتای بد خوک است هر کسی گوش خوکام میخوره اونم تو صفاتای زشت وجودش می بی غیرت دوز بی ایمان بی باز خوک چی میگه خوک میگه میگه شکر میگه خدای صد مرتبه شکر که من خوک هستم آدم بینमाज نیستم چی سرا که میگه به جنت نیست جای بینمازان بود دوزخ سرای بینمازان بسوزد آتش تیز جهنم سر و دست و پای بینمازان زخیش بینمازان زن نخواهی مد دختر به شاه بینمازان بلرزد کوه گر او را ببیند زهیبت جایگاه بینمازان حدیث بینمازان نیز مشنو حدیث به نمازون نیز مشنو ما تو مرحبای بنمازان سهرگاهان بنز ماورد صحی چون این پند از برای بنمازان تو انسانی که خداوند تو را عزت داد کرامت داد از دیگر مخلوقات که تو را بیشتر شر چریت زیبا ساخت وظیفه عالی ساخت تو در دور کات نماز با خداوند جنگیست گفت نمیزنن میگه بازی انسان که هست شخصیت خدا خدابیکی تحت صفر آورده به خداوند درو ارزش ندارم. به خداوند متعال جل جلاله برای انسان وظیفه عالی شخصیت عالی اشرف و مخلوقات رو ساخت. انسان یک مخلوق است با هدف هدف زندگی میکنه. همیشه هر چیزش از حیوانات فرق میکنه. ما شما در درس انسان زیستن این موضوعاتی که ما چی میتونیم که می یک انسان زندگی بکنیم. چه قسم میتاره یک انسان زندگی بکنیم؟ باید خودا از زندان خلاص کنیم زندان حیوانیت زندان شیطانیت و زندان انانیت این ما شما در دست انسانزیستن میخانیم خب مخلوقات خداوند چند قسم پیدا کردن؟ مخلوقات دو قسم هستند. یکی مخلوقات یک است یکی هم مخلوقات دو بودی مخلوقات یک بودی چی مانم؟ مثلا حیوانات یک بود دارن بوده مادیت و شهوانیت خلاص بخورم خواب کنم ایرمی بودشان است معنویت نداره حیوانا ملائکا چی دارن؟ ملائکا بود حیوانی ندارن، شهوانی ندارن ملائکا بودشون بود ملکوتی است، ملائکه هستن، روحانی است، معنوی است همیشه با معنویت زندگی میکنن و ملائکه ها و حیوانات یا مخلوقات یک هستند اما برعکس اونها انسان ها مخلوقات دو بودی هستند یعنی ما شما 50 فیصد مثل ملائکه ها هستیم معنویت داریم روحانیت داریم شخصیت داریم 50 فیصد در وجود ما از حیوانیت است خوردن است نوشیدن است شهوت از خواهشات هست است این همی پینجا فیزدیست ما چطور میتونیم خدا اصلاح بسازیم ما میتونیم خدا ملاکه ها رو بسازیم میگه بله ترازوش به دست خود انسان است میخوایی که مثل ملاکه ها رو زندگی بکنی باید خواص حیوانیت امو قسم که خداوند گفتد داخل یک چاوکات بخو اسراف نکن ازدواج بکن کارای زش نکن مثل حیوانات وارد به خاطر این بده ساردن غزا دیگرها آره را نکش غذا هم نمیه اگنخو بخو حلال بخو از جنس نمیه استفاده نکن استفاده بکن لکن حلال از طریق ازدواج استفاده بکن بنامه اگر اینی انسان بخش معنویت خودت تقویت کنه بازی انسان از ملائکه ها هم کدر ردبش بلندتر میشه اما اگر اینمی انسان معنویت خود در نظر نگیره همیشه مثل حیوانات واره فقط و فقط به خوردن و نوشیدن مشغول باشه فقط زندگی حیواری رو پیش ببره بازی انسان ها انقدر ضعیف و شخصیت میشه که حتی حیوانات هم از این کده برتر میشه چون که در روز قیامت حیوان بیچاره مسئولیت نداره حیوان وقتی که مرد خلاص است اما ما تو انسان هستیم که باید هدفمند زندگی بکنیم بنان انسان هایی که خدا میشناسن اسلام میگه که تو خدا بشناس شخصیتت درک بکو. وزیفت درک بکن همه در خدمت تو هستن تو در خدمت خدای عزّا و جل سعی کن کل یک غلام توست ابر و باد و ما و خورشید و فرق در کارند کارگر توست تا تو نانی به کفاری و بگفلت نخوری. انگاری همه در خدمت تو هست تو باید بفهمی که در خدمت خدای عزّا و هستی با خاطر آبادی زمین با خاطر خوبی تو نگو که بگو ولی من ترک دنیا میکنم. در اسلام که دنیا هم نیست چون که مسلمان میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه خدای ما چی بده در دنیا حسنه بته یعنی نیکی های دنیا را پروردگاه رو نصیب ما بکن و فی الاخرت حسنه و پروردگار را در آخرت هم بر ما چی کو خوبی های آخرت هم نصیب ما بکو این حال در جهان بینی اسلامی خداوند متعال جل جلو برای ساختن انسان چی کارا میکنن؟ مثلا وقتی ما شما در وفتی گوزشتان برتان گفتم اگر یک موتر میسازیم اول چی میکنیم؟ استخراج معدن. اول کشف مدن باز استخراج مدن باز در مرحل سوم زوی مدن است باز در چهارم، چارم پرزه سازی است و در مرحله پنجم اتصال و رب دادن بین عزیب پرزه هست. انالو وقتی که ما این کارها را میکنیم وقتی ما این کارها را میکنیم به خاطر که یک معتر بسازیم اینه اینه کارها رو خداوند بالای ما کردن به خاطر که ما رو بسازد چه قسم ما را می اول ما رو از بین دیگر مخلوقات خارج کرد گفت که شما برای از مخلوقات،, مخلوقات کشف ما کرد که تو انسان چهره زیبا روحت بسیار عالی شخصیت و کرامتت بسیار عالی است بعضی که ما را از بین ازوا کشید باز بر ما گفت که شما وظیفه بسیار عالی دارید شما خلافت خداوند در روی زمین است تو بسیار شخصیت عالی داری باز بعد از وقتی که شد توسط عبادت ها ما ساخته میشیم باید نماز بخونیم مثلا اگر نفر نماز میخوان، تکلیف است در در زمستون میری وضو میکنی در گرمی میری مثلا نماز میخونی در گرمی ها روزه میگیری مشکلاتم تحمل میشی پس یعنی که انسان مثلا روزه میگیره نماز میخونه جهاد میکنه دعوت میکنه راه دینی رو پیش در کل از تکلیف است که انسان از زعوب میکنه تا که انسان ساخته میشه وقتی که انسان ساخته شد باز باز از این پارچه ها با هم یک جایی شده باز از پیش از یا از, از این انسان ها چجور بشن یک جامعه اسلامی اگر یک موتر جاپانی داشته باشی تیز نی؟ پرزه اندی در موتر چالان میشه؟ باید در موتر جاپانی پرزه چی پرتی؟ جاپانی. اینا اینالا ما شما به جامعه اسلامی ایندی. کل ما پرزای چی هست؟ یکی تایتانیک، یکی تیریون، یکی جیوتیون. انال مهمه تو که جامعه اسلامی بسازیم. وقتی میتونیم جامعه اسلامی بسازیم، پرزاهای ما چی باشه؟ اصلی باشه. پرزا پرزاهای اسلامی باشه. تو تو جامعه اسلامی میسازی پس باید پرزا جوانای چی باشن؟ جوانای مسلمان، فکرش اسلامی، عقیده‌ش اسلامی، عملکردش اسلامی. اونو وقتی که ما اسلام شدیم جوارای مسلمان بودیم باز اون وقت ما میتونیم میتونیم که جامعه اسلامی رو بسازیم اما اله ما میتونیم بسازیم نه چرا که اون دوا گاوا پرستش میکنن ما چرا اون دوا رو پرستش میکنیم شاگردای گاوا پرستش میکنه اون دوام بیرون پیش کلی خدا میمونن اکسای گاوا در خانه خدا آویزان میکنن ما اکسای گاوپرستا رو ده خانه خدا, در خدا. میکنیم نمیگین این از دیدگاه اسلام اول, اول قانون چیست که ما باید خود سازی بکنیم یا جامعه سازی بسازی. اول باید خود بسازیم خود رو پرزی خوب بسازیم باز ما که خوب شدیم جامعه ساخته میشه در افغانستان مشکل چیست که مردم خود رو اول میخوان جامعه رو بسازه خودش کنتم خیر امتن ای صرفیتان چی میگه؟ میگه چی مانا کنتم خیره امتن اخرجت لناس میگه شما بهترین خارج چلین برای مردم تو وظیفه تیه است که باید اصلاح جهان رو تو اصلاح کنی تو باید در پیش روی نقشه قریه تا نمانی. که بگی مزیدی قریه هستم اینی زبانم است این فلانیم است تو باید وقتی که میخوانی که الحمدلله رب العالمین در مقابلت نقشه دنیا رو بانی رب العالمین خداوند پروردگار هم است باید نقشه جهان رو در پیش روید بانی و برای اصلاح کل جهان سعی و تلاش و کوشش بکنیم فاهمیدین یا نه؟ این حالا خاطر انسان سازی انسان باید مبارزه با چی بکنه؟ با نفس خود نفس خود اول اصلاح بکنه از این خاطر علماء میگن که جهاد با دشمن بسیار سواب عجز زیاد داره لیکن میگه او جهادم جهاد, جهاد خرد است جهاد اکبر کدا بکیست؟ که انسان مبارزه بر علیه نفس بکنه چرا؟ مگه خاطر از اینکه در جهادی که بر دشمن میکنی میگی اینجا دشمن معلوم دارست اما در جهاد با نفست دشمنت معلوم نیست معلوم نیست در جهاد با دشمن وجمی فهمی که دشمن است اما نفسد میگه من خود دشمنت نیستم من هستم من درست هستم نماز نخوان چی میگینی نماز میخونی چی اشکی یک ساتکه تا در جهاد با دشمن شاید یک نفر یکم دوم و آروم بشه در دوم یک عملیات بکنن برای دشمن جهاد بکنن اما در جهاد با نفس باید 24 ساعت تو جهاد بکنی از این خاطر چیزی ای هست کلامش سخت است جهاد با نفس سخت است نیست در جهاد با دشمن در جهاد با دشمن اگر دشمن سر و شد تو شهید میشی اما در جهاد با نفس اگر نفس سر زور شد باز مردی تو مردار میشی از این خاطر جهاد با نفس نسبت به جهاد با دشمن چیست؟ مشکل تر است و سخت تر